با سلام به شنوندگان خوب افسانه های صوتی. از سری داستان های کتاب مردی که نمیخواست بمیرد با داستان دیگه در خدمتتون هستم که امیدوارم از شنیدن داستانمون لذت ببرید. اسم داستانمون هست هیزوم شکن و شاهزاده ای از ما. تو زمانهای بسیار دور هیزم شکن پی فقیری زندگی میکرد که روزگارش رو با بریدن نیهای خیزران و فروختن آنها میگذراند. اون مرد غمگینی بود ولی قماندوهش به خاطر فقر و تنگ دستیش نبود بلکه به خاطر این بود که اون بچه نداشت پیر شده بود و بدون اون که بچه ای داشته باشه که مایه شادی و امیدش باشه زندگی می کرد هر روز صبح زود به کوهستان و جشت و جنگل ها می رفت که بتونه خیزران و بامبو پیدا کنه و بامبوهای مورد نظرش رو انتخاب می کرد و اونا رو با چند ضربه تبر می شکست و بامبوها رو میبرید یا از محل بند بند شدنشون قطع قطعه قطعه میکرد و ازشون نی درست میکرد و اونها رو به دوش میکشید و به می آورد. اون بامبوها رو که سخت و کلوفت بودن به نجارها میفروخت و از نیهای نازکتر و نرمترش سبد میبافد و با پول کمی که از فروش نیها و ها به دست می آورد زندگیش رو میگذروند. هر روز پیرمرد بیشتر از همیشه از فقر و تنگدستی و بیفرزندیش قمگین و افسرده بود. با ناامیدی ها رو با تبر میشکست و اونها رو مینداخت. نزدیک به غروب شده بود و جنگل داشت تاریک میشد. اون با یه ضربه دیگه که کارش تموم میخواست کنه تبرش رو, رو روی یه بامبو خیلی باریک و جوان گذاشت و هنوز بامبا نیفتاده بود که یه دفعه فواره ای از نور ازش بیرون پاشید و اطراف رو روشن کرد. مرد یهو ترسید و به عقب رفت ولی یهو آواز خیلی شیرینی به گوشش رسید. اطرافش رو نگاه کردید کسی اونجا نیست. خوب که گوش کرد؟ فهمید که آواز از درون همون بامبویی که آخرش قطع کرده میاد مرد داخل بامبو رو نگاه کرد دید یه دختری که صورتش شیرین و زیباه که تا اون موقع ندیده بود داخل بامبوه همون دختر داشت اون آواز شیرین رو میخوند ولی وقتی پیرمرد رو دید از آواز خوندن ایستاد و با لبخند شیرینی دست رو به طرف پیرمرد دراز کرد تا پیرمرد اون رو بگیره. دختر یه لباس خیلی زیبا و گرانبهایی تن کرده بود و مثل یه شاهزاده خانم گیسای سیاه و بلندش روشون ها شیخته بود. چشاش مثل خورشید میدرخشید و بوی خوش گلها رو از بدنش میتونستیم استشمام کنیم. و یک سپیدیو تاج زیبایی هم ازش میتابید. پیرمرد اون موجود کوچولو رو تو دستاش گرفت و گفت فقط خدا ممکنه اونو برای من فرستاده باشه که فرزندم باشه و مایه شادی روزگار پیرین باشه. اون همونجا خدا رو سپاس کرد و از اینکه آرزوی دیرینش برآورده شده تشکر کرد. پیرمرد اون دختر رو به خونش برد و به زنش نشون داد تا اون رو بزرگ کنن. اون کودک اونقدر کوچیک بود که حتی درون یه سبد کچیکی هم جامی شد. از اون روز به بعد شادی و خنده به خونه پیرمرد مرد اومد. پس از سالهای سال غم بیفرزندی حالا اونها تمام عشق و شوقشون رو به اون کودک شگفتانگیز داده بودن از اون روز به بعد هیزم شکن پیر در بین بامبوهایی که قطع می کرد تلا و زر پیدا می کرد و به این ترتیب اون یه مرد توانگری شد که کلبه کوچیکش رو بزرگ و زیبا کرد و دیگه کسی اون رو هیزم شکن فقیر نمیدونست. ماهی به سرعت گذشت در این مدت اون کودت با سرعتی باور نکردنی بزرگ شد و یک دختر کامل و برازنده شد. زن هیزم شکن موهای اون رو شونه میکرد و لباس زیبا بهش میپوشون. دختر اونقدر زیبا و برازنده شده بود که اونها مانند یه شاهزاده درون خونه و اون رو در پس پرده می‌نشوندن و به کسی اجازه نمیدادند که اون رو ببینه. مثل این بود که دختر از پرتو نور ساخته شده باشه چون فضای خونه از درخشش و نورش پر شده بود. اون تنها مایه دلخوشی پیرمرد و پیرزن شده بود و اونها هر غم و اندوهی که داشتن فقط کافی بود به اون دختر نگاه میکردن تا غم از دلشون بره و شاد بشن. سرانجام روزی رسید که اونها میخواستن یه اسمی برای دخترشون انتخاب کنن. زن و شوهر پیر تصمیم گرفتن اون رو کاگویا یعنی شهدخت ماه اسم بذارن چون از پیکرش پرتو نور سپید و سیمینگونی میتابید اونا مراسم اسمگذاری شهدخت ماه رو سه روز جشن گرفتن و همه دوستا و همسایه هاشون رو دعوت کردند. هر کسی با دیدن هم دختر میگفت که هیچ وقت و هیچ جا همچین دختر زیبا و ای ندیده و همه زیبایی های سر, سر اون سرزمین در برابر زیبایی اون ناچیزه. اسم و شهرت این شهزاده پریچهره خیلی زود در همه کشور پراکنده شد و از گوشه و کنار مردای بسیاری که آرزوی ازدواج با اونو داشتند یا می‌خواستند که یه نظرم شده اونو ببینن به سوی خونه اونها راهی می‌شدند. مردای جوان و خواستگارای زیادی که از دور و نزدیک اومده بودند، بیرون خونه پیرمرد جمع شده بودند. بعضی اونها از پرچین و دیوارهای دور تا دور خونه بالا می‌رفتند که بتونن به درون یه نگاه بندازن و یه نظر اون شاهزاده رو ببینن. روزها شبا میگذشت و اون جوونا همینجور بیرون خونه مونده بودن و نمی رفتن. به این امید بودن که دل اون شهد نرم بشه و اونها رو قبول کنه و یا به حرف و خواستشون گوش بده ولی امیدهای اونها بیهوده بود اون دختر خودش رو به هیچ کسی نشون نمیداد. از پیرمرد و پیرزن زن و همه خدمت هم خواسته بود که به گفته مردم گوش ندن ولی با این همه اون خاستگار روزا و شبا همونجا میموندن و بازم آرزوی دیدن اون دختر رو داشتن. همینجور زمان میگذشت. بسیاری از این مردایی که امید آرزوشونو از دست داده بودن و نامید شده بودن به خونه هاشون برگشتن. به جز پنج نفر. این پنج مرد سلح شور نه تنها گذر زمان براشون معنی نداشت بلکه اشتیاقشون هر روز هم افزوده تر می شد. هر پنجتو مرد بیرون خونه پیرمرد مونده بودن و روز و شب اونجا رو ترک نمی کردن. در هوای بارونی، ابری، طوفان شدید، زیر تابش آفتاب یا تاریکی شبهای بدون ستاره اونا همینجور اونجا ایستاده بودن و با غذای کمی که با خودشون داشتن روزها رو می گذروندن. گاهی هم نامه هایی به اون شاهزاده می نوشتند و براش می فرستادن ولی از هیچ کدوم از اونها پاسخی دریافت نمی کردن اونا پس از اینکه تو نامه نوشتنم شکست خوردن شرخ سرودن رو آغاز کردند و به زبون شعر از عشق سوزان خودشون و از مهری که داشتن حکایت می کردن خوب آرامش ازشون دور شده بود و حتی از خونه و کارشانشون هم دور شده بودند ولی باز هم پاسخی دریافت نمی کردن. انگاری که حتی هیشگی شعر و حکایتشون رو نمی شنید کم کم زمستون شد و گرمای تابستون جای خودش رو به برف و باد و سرمایه زمستون داد تابستون و زمستون بعدیم اومد و گذشت اما گذشت زمان و گرما و سرما، تأثیری بر تصمیم اون پنجتا مرد صللح نداشت اونا همون جور منتظر موندم تا این که یه روز پیرمرد به دیدنشون اومد اون مردا به پیرمرد گفتن که میخوان نظر شاهزاده رو بدونن و به شاهزاده گفتن که تصمیم ازدواج با اون رو دارن و باید شاهزاده بدونه که اونها در عشق خودشون نسبت به اون وفادارن. اونا از سختی های انتظار و شبها و روزهایی که به انتظار نشسته بودن گفتن و منتظر یه پاسخی موندن. پیرمرد به حرفای اونها گوش داد و چون دلش به حال این آشقای وفادار میسوخت، دوست داشت که دختر خوندهش با یکی از اونها ازدواج کنه. پس پیش شاهزاده خانم رفت و گفت دخترم. اگرچه تو در چشم من همیشه آفریده و فرستاده ای و از طرف آسمون اومدی ولی من تو رو فرزند خودم میدونم و تو پرستاری از تو مثل فرزندم تلاش کردم پس یه خواهشی ازت دارم که به سخن من گوش بدی و آرزوی منو برآورده کنی دختر جواب داد که از انجام هیچ کاری برای آرزو پیرمرد دریق نمیکنه و اون رو مثل پدر خودش دوست داره و گفت که منم از روزی که چشم باز کردم بهجز تو و مادرم پدر و مادری مادر ای نداشتم و نمیشناسم پیرمرد از شنیدن این گفته‌ها خیلی خوشحال شد پس گفت که چقدر مشتاق و آرزومنده که دخترش رو در لباس عروسی ببینه او میخواست ببینه که دخترش همسری شایسته داره. پس گفت من دیگه پیر شدم. هفتاد سال از عمرم به سر اومده و هر لحظه ممکنه که مرگم فرا برسه. پس بهتره تو یکی از این پنج تا خواستگار رو که همه مردای جوان و برازنده هستن ببینی از بینشون یکی رو انتخاب کنی. دختر با نارضایتی گفت پدرم ولی من تصمیمی برای ازدواج ندارم و نمیخوام این خونه و شما رو ترک کنم پیرمرد گفت دخترم سالا پیش که زمانی که تو موجود کوچیکی به اندازه یه بند انگشت کوچیک بودی تو رو زیبا و تابنده و فروزان یافتم به همین خاطر تو رو همیشه چیزی بیشتر از یه دختر زمینی میدونم ولی تو مثل دختر ما در خونه ما و در کنار ما بزرگ شدی و تا هر زمان که بخوای حق توی که تو این خونه پیش ما بمونی ولی خب بعد از اینکه من از این دنیا برم و دیگه اینجا نباشم چه کسی از تو پشتیبانی میکنه و تو رو در پناه خودش میگیره ازت خواهش میکنم که این پنجتا جوان شایسته رو ببین و یکی از اونها رو به همسری انتخاب کن. دختر گفت که هیچ کدوم از اونها را نمیشناسه و مطمئن نیست که بعد از ازدواجش به اون وفادار باشم. پیرمرد گفت حرفای تو منطقیه ولی چطور میخوای به اطمینان برسی؟ این تا سلحشور ماه هاست که دل بهت سپردن و بیرون این خونه منتظرن تا تو رو ببینن و از عشقشون بهت بگن. همه اونها از خانواده های بزرگ و توانگرن بیشتر از این دیگه چی میخوایی؟ دختر گفت اینا کافی نیست هر کدوم از اونها برای اثبات وواداریش باید چیزی رو که من میخوام پیدا کن و اینجا بیاره هی زمشکم بیرون رفت و با خواستگارات که به خاطر دخترش اون همه سختی رو تحمل کرده بودن همدردی کن و بعد پیغام دخترش رو بهش رسوند. گفت که دخترم تنها به همسری مردی درمیاد که در آوردن اونچه رو که اون خواسته پیروز بشه. هر پنج تا آزمایش را پذیرفتن خوشحال شدن چون این کار حسودی رو از بینشون بر داشت. اون وقت شاهزاده ما به نخستین سلحشور پیام داد که باید کاسه سنگی بودارو از هندوستان بیارن. به دوم سلحشور شور گفت باید به کوهستان هورای تو دریای خاوری میرفت و شاخه از درخت عجیبی رو میآورد که بر فراز اون کوه رویده بود و ریشه هاش از نقره تنش از طلا و شاخاش پر از گوهرهای گرانبه ها بود. سومین سل شور باید به چین میرفت و موش آتیش رو پیدا می کرد و پوستش رو می آورد. چهارمین سلحشور باید به جستجوی اژدهایی میرفت که گوهری درخشان رو سرش بود و پرتوی پنج رنگی ازش میتابید. و پنجمین سلحشورم باید پرسویی رو پیدا میکرد که صدفی رو در شکمش جا داده و اون باید اون صدف رو برای شاهزاده می آورد. پیرمرد بعد از اینکه ها رو به جنگ جوا دادش کمی صبر کرد. اون دو دل بود چون فکر میکرد که انجام این خواسته ها خیلی سخت و دشواره حتی شاید هم غیر ممکن ولی شاهزاده هیچ شرط دیگری رو قبول نکرد و مردای سلحشور که از خواسته دختر قبردار شدن امیدشون رو به کلی از دست دادن و ناامید و دل شکسته به خونه هاشون رفتن ولی بعد از مدتی باز به یادش افتادن و تصمیم گرفتن که به هاش عمل کنن اولین سلح شور برای دختر پیغام فرستاد که برای یافتن کاسه بودا راهی هندوستان شده و تلاش میکنه و امیدواره که بتونه هرچی زودتر اون رو براش بیاره ولی اون دل سفر دریایی و طی کردن اون همه راه دراز و پرخطر رو نداشت پس به یکی از های بودا تو شهرهای اطراف رفت و کاسه سنگی مهرابی رو که اونجا قرار داشت رو از راه به اونجا خرید و کاسه رو در یک پارچه زربافت پیچید و یک سال خودش رو قایم کرد و بعد دوباره به منزل پیرمرد برگشت شاهزاده ماه که از زود برگشتنش شک کرده بود کاسه رو از پوشش زرینش بیرون آورد و انتظار داشت که خونه از فروغ و کاسه سنگی قرغه در نور بشه. ولی اون کاسه هیچ نوری نداشت و نمی درخشید. دختر فهمید که کاسه دروغیه و مال بودا نیست. به خاطر همون عصبانی شد و کاسه رو به زمین کوبید و به صلح شور گفت که به خونش برگرده و امیدش رو برای به دست آوردن دل شاهزاده به کل فراموش کنه. سلحشور دوم به پدر مادرش گفت که قصد سفر داره و میخواد به سرزمین های دور بره. با خانواده و دوستاش خدافی کرد و برای شاهزاده پیغام فرستاد که راهی کوه هورای شده که بتونه شاخه ای رو که زرین هستش برای شاهزاده بیاره. اون و همراهش راه رو شروع کردن. و به بندری رسیدن بعد از اون سوار کشتی شدن، سلحشور جوان بعد از سه روز به خشکی رسید، اونجا چندتا نجار رو پیدا کرد و بهشون گفت که یه خانه محکمی براش بسازن طوری که هیچکس نتونه به درون آم بیاد. بعد شش جواهر ساز و زرگر رو اجیر کرد تا با خودش تو اون خونه حبس کنه و تلاش کنن که یه ای درست کنن که از سیم و زر درست شده باشه و همون جوری خیال میکرد که شاهزاده ماه از دیدنش خوشحال میشه میخواست که شاخه جواهر نشان جوری باشه که اون باور کنه که از کوه هورای اومده چون مرد جوان شنیده بود که کوه هورای جایی افسانه‌ایه و در جهان وجود نداره. وقتی ساختن شاخه گرانبها به پایان رسید مرد جوان راه خونه رو در پیش گرفت و جوری وانمود کرد یه انگاری که از سفری دور و دراز اومده و خسته است. اون شاخه گوهر نشان رو تو جبهی گذاشت و اون رو به خونه هیزم شکم برد و از پیرمرد خواهش کرد که کادش رو به شاهزاده پیشکش کنه پیرمرد با دیدن ظاهر خسته و خاکالود و لباس‌های پاره‌پوره شده اون فهمید که تازه از سفر برگشته یک راست به خونه رفت دخترش رو تشویق کرد که اون جوون از سفر اومده رو ببینه ولی دختر ناراحت و غمگین موند پیرمرد تا تونست از اون گنجیدنه گرانبها تعریف کرد و گفت که در جهان هیچ چیزی به زیبایی اون نیست. بعد سلحشور گفت که من رنج سفری طول و دراز رو در پیش داشتم تا به کوه هورای رفتم و اون درخت رو پیدا کردم و شاخه ای از اون رو برای شما به ارمغان آوردم. شاهزاده ما شاخه رو در دستاش گرفت. و خوب به اون نگاه کرد. بعد پدرش رو صدا کرد و گفت باور نمیکنه که انسانی بتونه اینقدر زود و آسون خودش رو به کوه برسونه و برگرده. پس پیرمرد بیرون رفت و از سلح شور پرسید که اون شاخه رو چجوری به آورده. اون مرد داستانی دور و دراز سرهم کرد و از سفری سخت و دشوار تعریف کرد و گفت دو سه سال پیش من در کشتی نشستم و به امید پیدا کردن کوه هورای سفرم رو آغاز کردم من و سفرم از دریا گذشتیم ولی یهو یه دچار طوفان و گردباد شدیم و به فضل خدا جون به در بردیم راه رو گم کردیم و سرگردان بودیم و هیچ نشانه ای از خشکی یا جزیره نمیدیدیم گیج و پریشون شده بودیم تا اینکه یه روز موجای دریا ما رو به ساحل ناشناخته ای برد که چشم آدم تا حالا به اونجا نیفتاده من و دوستام از کشتی بیرون اومدیم و به گشت و گذار توون جزیره پرداختیم و زود فهمیدیم که اونجا جایگاه دیوها هستش من و همراهام از ترس افتادم به دست دیو هرچه زود سوار کشتی شدیم که دچار طوفان هم شده بود اون رو بازسازی کردیم از آب و میوه‌های اونجا هر چی تونستیم برای خودمون ذخیره برداشتیم و بادبان کشتی رو برفراشتیم و دوباره به دریا رفتیم. روزها و ماه ها در دریا رفتیم ولی هیچ نشانه ای از خشکی ندیدیم. غذا و آبمونم به پایان رسیدیم و همگی به حال خسته و مرگ افتاده بودیم. سرانجام در چهار روز سفرمون تونستیم تو افاق دریا چیزی ببینیم که مثل کوهی به نظر میومد. وقتی جلوتر شدیم دیدیم که جزیره با کوهی وسط اون. کشتی رو به ساحلش بردیم و لنگر انداختیم. در اون جزیره من دو سه روز تو ساحل راه رفتم. دنبالی کسی میگشتم که راه نماییم کنه. اما یهو یه به یه موجود نورانی و درخشان برخوردم نزدیکش رفتم و پرسیدم که اینجا کوه جزیره هوراه و اونم پاسخ داد که بله کوه هورای همین دیگه تحمل نکردم و راهی قله شدم چندین شب و روز از سنگ و سنگلاخ بالا رفتم و با رنج و سختی بسیار به نوک قله رسیدم اونجا درخت زرینی دیدم که ریشه سیمینه و در سنگ فرو رفته میوه هاش رو هم که همه زر و گوهر بود از شاخ فرو ریخته بود فوراً شاخه‌ای از اون درخت شکستم و به پایین کوه اومدم شگفتیای اون جزیره اونقدر بود که اگه بهتون بگم از گفتن باز نمیستم با که آرزوی موندن تو اون جزیره رو داشتم ولی چون دخترتون دستور داده بودن من همه اونها رو از یاد بردم و آسایش و آرامش رو رها کردم سوار کشتیم شدم و فورا و با شتاب برگشتم اومدم تا بعد از 300 روز به اینجا رسیدم و بلافاصله خودم رو به شما رسوندم و همین جور که میبینید تنم خسته است و لباسم پر از خاک و فرسوده شده. برای اون که در رسوندن شاخه به دست دخترتون تأخیر نکنم حتی به نرفتم و یک راست به اینجا آمدم. درست تو همین لحظه که سلحشور داستان دروغینش رو به پایان رسوند اون شش جواهرسازی که برای ساختن اون شاخه گوهرنشون عجیر شده بودن به اونجا رسیدن و میخواستند که پول دستمزد کارشون رو بگیرند. اونو گفتند که دو سال برای ساختن اون شاخه زرین کار کردن و رنج بردن ولی هیچ دستمزدی دریافت نکردن. به این ترتیب حقه و نیرنگ سلحشور دوم هم آشکار شد. شاهزاده خوشحال بود که دست مرد رو شده وری راضی نشد که شاخه زرین رو برای زرگرا بفرسته و اونها رو نامید کنه اون, اون جواهرسازا رو صدا زد و دست رو پرداخت کرد اونا هم پولشون رو گرفتن و با خوشحالی برگشتن اما در بین راه به همان سلشور برخورد کردند. اون جواهرسازا رو به خاطر اینکه رازش رو فاش کرده بود تا حد مرگ زد اونا به سختی از دست جوان خشمین فرار کردن و جون به در بردم و جوان هم که ناکام شده بود به خونش برگشت اون همه مال و ثروتش رو به بینواها بخشید موی سرش رو تراشید و لباس‌های راهبها رو پوشید از زندگی با مردم دست کشید و به تنهایی به کوهستان پناه برد و زندگیش رو در گوش نشینی و راز و نیاز سپری کرد. ولی بشنوید از سلحشور سوم، اون دوستی تو کشور چین داشت پس نامه ای بهش نوشت و تو نامه ازش خواست که پوست موش آتش رو براش پیدا کنه و بفرسته. ویژگی عجیب این پوست این بود که آتیش نمی گرفت و نمی سوخت. به دوستش نامه نوشت که برای به آوردن این پوست هرچی که پول لازم باشه میده. مدتی بعد خبر رسید که دوست اون جوان سلحشور سوار کشتیه و در بندر منتظرشه. جوان سوار اسب شد بعد از هفت روز سواری خودش رو به بندر رسوند. اون پول خیلی زیادی به دوستش داد و پوست موش آتیش رو ازش گرفت و به خونه برگشت پوست رو توی یه صندوخچهی گذاشت و اون رو برای شاهزاد خانم فرستاد پیرمرد مرده هیزوم شکن از سلح شور گرفت و مثل همیشه اون رو به دخترش داد و ازش خواست که اون رو ببینه ولی دختر قبول نکرد و گفت که اول باید از درستی اون پوست مطمئن بشه. اون پوست رو تو آتیش انداخت. اگه اون پوست پوست موش آتیش بود نباید میسوخت. پس سندوخچه رو باز کرد پوست رو داخل آتیش انداخت و پوست فورا خشخش کرد و سوخت و به خاکستر تبدیل شد. دختر فهمید که این مردم نتونست خواستش رو برورده کنه و به این ترتیب ثبومی سلحشورم ناکام شد. شور چهارمم شجاتر از دیگران نبود. اون همه خدمتکارا و زیر رو فراخونده بود و به همهشون فرمان داده بود که سر تا سر ژاپن و چین رو در پی اجده های گوهر بگردن و اون رو پیدا کنند. خدمتکارا مردای جنگی بسیاری راه افتاده بودند و هر کدومشون به سمت و سوی رفته بودند ولی هیچ کدوم از اونها تصمیم نداشتند که به دنبال اجده برند برن چون میدونستن یه کار غیر ممکنه پس هر کدامشون با سیموزری که اربابشون در اختیارشون گذاشته بود یه جای خوشاب و هوا رفته بودن و زمان رو سپری میکردن در این مدت صلح شور که فکر میکرد کرد خیلی زود اون گوهر رو میارن به بازسازی خونش و هرچه زیباتر کردن اون پرداخته بود جوری که خونش لایق و شایسته شاهزده خانم باشه، اون یک سال رو در انتظار گذروند ولی خبری از مرداش نشد صبرش به سر اومد و از انتظار کشیدن خسته شد. باید خودش دست به کار می شود. یه کشتی کرایه کرد به ناخدا فرمان داد که به دریا و در جستجوی اجده ها پیش بره. ناخدا گفت که این کار خطرناک و بدون فرجام هستش و سلحشور به زور شمشیر ناخدا رو وادار کرد که به دریا بره. اونا چند روزی در دریا بودند تا اینکه گرفتار طوفان سختی شدند و چیزی نمونده بود که کشتیشون قرق بشه و همه‌شون هلاک بشن به همین دلیل آتش اشتیاق مرد سلحشور فروکش کرد و پشیمون شد سرانجام موج‌های دریا کشتی رو به یک ساحلی رسوندند مرد خسته و شکست خورده از رنج سفر رنجو رو بیمار شد پس به خونش برگشت و به بستر بیماری رفت در روزهای بیماریشم به علت این همه رنج و اندوه و عشق به دختری که داشت ناراحت و غمگین بود و خودش رو سرزنش میکرد اون حتی به این فکر افتاد که شاید اون دختر میخواسته اونو بکشه و به همین دلیل اونو به یه همچین سفره پرخطری خطری فرستاده و چنین هدیه ناممکنی را ازش خواسته. جوان بیمار با خودش احت و پیمان کرد که فکر دختر را برای همیشه از سرش بیرون کنه و هرگز دیگه به خونه اون نزدیک نشه. پنجمین سلحشور هم مثل بقیه نتونست اون چیزی را که دختر خواسته پیدا کنه. و در یافتن پرستویی که صدفی در شکمش داشته باشه ناکام و ناامید شده بود تا این زمان آوازه دختر شاهزاده به گوش امپراتور هم رسیده بود اون یکی از بانوان دربارش رو به خونه شاهزاده فرستاد تا اون رو ببینه و اگر پسندید به کاخ دعوت کنه تا اون رو از بانوهای دربار خودش کنه فرستاده امپراتور به خونه پیر مرد رفت و خواست که اون دختر رو ببینه ولی دختر قبول نکرد وقتی شنید که امپراتور اون رو فراخونده گفت که اگه بخاند به زورونو رو ببرند اون از پیش دیده های اونها محو ناپدید میشه وقتی امپراتور از این ماجرا خبردار شد تصمیم گرفت که خودش به دیدن اون دختر عجیب بره برنامه سفر و شکار چند روزه چید و به همراه هاش به سوی خونه مرد بامبوساز رفت که در اطراف کلبش بود امپراتور برای پیرمرد پیغام فرستاد و از تصمیمش برای دیدن دخترش اون رو آگاه کرد و بعد از اون که به همراهش بدون اینکه چیزی بگه با یکی از پیشکارای خاصش سوار اسب شد و تا کلبه پیرمرد رفت یک راست به درون کربه رفت جایی که دختر نشسته بود امپراتور هرگز زنی به اون زیبایی ندیده بود اون دختر از هر آدمی زادی زیباتر بود یه لحظهام نمیشد که از نگاهش عقب موند دختر به محض اینکه متوجه شد که ه فرد قریبه ای داره بهش نگاه میکنه سعی کرد که از اتاق خارج بشه. ولی امپراتور در اتاق رو بست و التماس کرد که به سخناش گوش بده. امپراتور شیفته و دلواخته دختر شده بود، پس از اون خواست که به قصرش بره و ملکه سرزمینش بشه. اون به دختر گفت که فروغ و زیبایی اون، باید کاخ و دربار رو آراسته کنه و گفت که شایسته نیست که یه همچین دختری توی همچین کلبه پوشیده و پنهان بمونه. امپراتور میخواست فرمان بده که یه تخت روان برای دختر بیارن. ولی دختر اونو از این کار من کرد. شااه گفت که اگه اون رو به زور ببرن از جلوی چشما ناپدید میشه. و تو همین لحظه بدنش رنگ می ناپدید میشه امپراتور ترسید و قول داد که باشه اونو رها میکنن به شرط اینکه به صورت اولیه و نخستینش در بیاد اون با دختر کرد و با غم و ناراحتی فراوان به شکارگاهش رفت فکر و خاطره شاه امپراتور رو بیقرار کرده بود اون حتی شعرهایی هم سرود و برای شاهزاده فرستاد که در اونها از عشق و دلباختگیش میگفت دختر اگرچه دیدار دوباره امپراتور رو نپذیرفت ولی تو پاسخ امپراتور با مهربونی نوشت که اون به این جهان تعلق نداره و نمیتونه با هیچ مرد زمینی ازدواج کنه بعد از مدتی پیرمرد مرد دختر خوندش رو هر شب غمگین و ناراحت می‌دید. دختر کنار ایوون می‌نشست، ساعت‌ها به ماه خیره می‌شد و اشک می‌ریخت. پیرمرد که دیگه نمی‌تونست رنج دخترش رو ببینه، پیشش اومد و ازش خواهش کرد که علت غم رو بگه. دختر با چشمای اشکبارش گفت که مطمئن شده که به این جهان تعلق نداره و از ماه اومده. و مدت توقفش در زمین به زودی به سر میرسه. در چهارده روز اون ماه دوستاش از ماه میان و اون ناچاره که با اونها بره. پدر و مادر حقیقیش هر دو در ماه هستن و اون دیگه پدر و مادر و سرزمینش رو و جایی که بهش تعلق داشت رو نمیتونه ببینه. و علت غموهش جدایی از پیرمرد و همسرش هست که مثل پدر مادر اونو بزرگ کرده بودن. این خبر خیلی زود به گوش امپراتور رسید و بر اینکه از درستی خبر مطمئن بشه چندتا قاصد رو به خونه پیرمرد فرستاد فکر جدایی از دختر پیرمرد اون رو آزرده کرده بود و در حالی که به شدت میگریست و گریه میکرد به فرستاده های امپراتور گفت که بله خبر حقیقت داره ولی تصمیم گرفته فرستاده هایی رو که از ماه برای بردن دختر میان دستگیر و زندانی کنه تا جایی که بتونه تلاش میکنه که این کار صورت نگیره در چهاردهمین روز اون ماه امپراتور دو هزار تا جنگجوی ورزیده رو به نگهبانی از کلبه و شاهزاده فرستاد. هزار نفر اونها روی پشت بام کلبه رفته بودن و هزار نفر دیگه هم در اطراف کلبه نگهبانی می دادن. همه اونها جنگجوهای کمانگیر چیره دستی بودن که اطراف بالای کلبه نگهبانی می دادن. پیرمرد هیزم شکن به همراه زنش و دختر داخل کلبه بودن. امپراتور به همه جنگجوها و کمانداراش دستور داده بود که مراقب باشند و یک لحظه هم کلبه رو از نظر دور نکنن چون نباید فرستاده های ماه دستشون به دختر برسه اما دختر به پدر گفت که همه این کارها بیهوده است و اگه مردم سرزمینش برای بردنش بیان هیچ و هیچ چیزی نمیتونه اونها رو از کارشون باز نگه داره. حتی کماندارای امپراتور. دختر هم همچنان اشک میریخت و میگفت که از جدا شدن و ترک کردن اونها اندوکین و ناراحته و اونها را مثل پدر و مادر خودش دوست داره. اون گفت که تنها آرزوش این بود که در روزگار پیری اونها اونجا پیششون بمونه تا بتونه اندکی از محبت های اونها رو جبران کنه بالاخره شب شد بعد از مدتی ماه بیرون اومد و سکوت و خاموشی همه جا رو فرا گرفت شب دراز به آرومی سپری میشد نزدیک سپیده صبح شده بود و همه خیال میکردند که خطر دیگه گذشته چون تمام کماندارا شب تا صبح رو اونجا مونده بودن و صدایی نشنیده بودن و چیزی ندیده بودن اما یهو یه ابری یه دور ماه رو گرفت و بعد به طرف زمین به گردش در اومد ابر نزدیک و نزدیکتر شد همه با ترس دیدن که مسیر حرکت اون ابر به طرف کلبه است. آسمون تیره و تار شد و ابر و دود به چند متری زمین رسید. در بین اون ابرها یک عرابه پرنده‌ای بود و درون عرابه گروهی از موجودا بودند که یکی از اونها انگاری رئیسشون بود. از عرابه بیرون اومد و در بین آسمون ایستاد و بعد پیرمردو صدا زد و گفت که زمان اون فرا رسیده که شاهزاده ماه به ماه برگرده به جایی که از اونجا اومده و بهش تعلق داره پیرمرد گفت میدونستم که شما چقدر مهربون هستین و پاداش این کارتون رو پیدا کردین 20 ساله که این دختر رو بزرگ کردم و تر تمام این مدت حتی یک بار هم خطایی از من سر نزده به خاطر همون اون نمیتونه دختری باشه که شما دنبالش هستید برید جای دیگه دنبالش بگردین ولی اون فرستاده با صدای بلند گفت شاهزاده ما از این خونه حقی رو کلبه باید بیرون بیاد و یه لحظه هم درنگ نکنه با این فرمانی که صادر شد درهای کاغذی اتاق شاهزاده کنار رفت و اون با پای خودش بیرون اومد فرستاده دست اون رو گرفت و اون رو درون عرابه نشون دختر سرش رو برگردون به عقب نگاه کرد و به پیرمرد و زنش نگاه کرد بعد با گرمی و سخنای امیدبخشی، اونها رو آروم کرد و بهشون گفت که مجبوره بره ولی هر بار که دلش برای اونها تنگ بشه میتونن به ماه نگاه کنن. پیرمرد التماس کرد که بذارن به همراه دختر بیاد ولی اونا همچین اجازه این ندادن. دختر لباس گوهر نشانش را از صدر آورد و به عنوان یادگاری به پیرمرد داد. یکی دیگه از عراب نشینا پیراهنی بالدار به دختر دادند و یکی دیگرم یک کاسه از آب حیات رو بهش دادند که بنوشه. دختر کمی از اون رو نوشید و خواست که پیاله را به پیرمرد بده ولی همچین اجازه ای بهش ندادن. فرستاده ها آماده برگشتن بودن که دختر فریاد زد یه لحظه صبر کنید من چیزی رو فراموش کردم و قبل از رفتم باید از امپراتور سپاسگزاری کنم و باهاش خداحافظی کنم فرستاده ها عرب نشینا عجله داشتند ولی دختر اونا رو وادار کرد که کمی صبر کنن تا نامه‌ای بنویسه اون نامه رو با جام آب حیات که در زیر کاغذ پنهان کرده بود به پیرمرد داد و ازش خواست که اونا رو به امپراتور بده. عرابه شگفتانگیز به طرف آسمون و به سوی ماه پرواز کرد و همه با چشمای اشکبار شاهد دور شدن اون بودن. عرب رفت و رفت و از نظرها ناپدید شد. اما نامه‌ای که شاهزاده ما خطاب به امپراتور نوشته بود و جام آب حیات رو به قصر برده بودند امپراتور بعد از بازگرداندن و خوندن نامه و نوشیدن آب حیات ترسید اون نامه و جام رو فوراً به بلندترین و مقدسترین کوه ژاپن یعنی فوجی برد تا روی اون کوه ببرند و و میگن دودی که تا امروز از بلندی کوه بلند میشه همون دودی هستش که از سوختن بازمانده های اون نامه مقدس بلند میشه و تا الان هم ادامه داره امیدوارم از شنیدن قصه ما لذت برده باشید آیا تا به حال آرزو کردین که به